گرامیان درود بر شما، فایل آوائی پونزده و آخر از کتاب برهان علیت، برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا، نوشته نوفخ رو با هم آغاز می کنیم. صفحه 152 عنوان هفته چهارده هم قرآن چیست؟ معجزه یا امر مقدس؟ ناباور خب رفیق، من منتظر پاسخی که به دنبالش رفتی هستم. مؤمن شاید فعلا نتوانم پاسخ اقلی و فلسفی برایت بیاورم، اما به هر حال معجزه ای مانند قرآن را نمیتوانم ندیده بگیرم. ناباور چرا فکر میکنی قرآن معجزه است؟ مؤمن چون هیچ کس نمیتواند کتابی و گفتهی مانند آن بیاورد و هیچ خطایی و تناقضی که حاکی از انسانی بودنش باشد در آن وجود ندارد. ناباور اتفاقا در مورد همین مسئله جبر و اختیار در قرآن تناقض وجود دارد. مؤمن. چه تناقضی؟ ناباور در بعضی آیات قرآن انسان مسئول اعمالش معرفی شده و او را دارای اختیار و آزادی در انتخاب سرنوشتش معرفی کرده است. و در بعضی دیگر گفته شده که سرنوشت انسان و حتی اینکه هدایت شود یا گمراه گردد به خاست خداست و تلاش هیچکس در برابر خاست خدا به جایی نمیرسد. پاورقی این آیات که بیشترشان مکی هستند از اختیار سخن میگویند و انسان را در قبال اعمالش مسئول میدانند. گرامیان نویسنده در اینجا 66 آیه از آیات قرآنی رو نام برده که من برای جلوگیری از اطالع کلام از خوندن اونا پرهیز میکنم. شما میتونید با دانلود کتاب این آیات رو ببینید. ادامه پاورقی این آیات که بیشترشان مدنی هستند از جبر سخن میگویند و سرنوشت انسان را از پیش محتوم میدانند و این مفهوم را گاهی به سراحت و گاهی به طور زمنی ادا میکنند. کنند. گرامیان در اینجا هم نویسنده به پنج و یک آیه اشاره کرده که من اونها رو نمیخونم ادامه مطلب از زبان ناباور. به علاوه اشکالات تناقضی دیگر و نیز خطاهای علمی فاهشی در قرآن وجود دارد. پاورقی. پیشتر در کتاب مغلطه های روحانیون چند مورد از تناغذ ها و خطاهای علمی و دستورات خلاف اخلاق در قرآن را مورد بررسی قرار داده ام. ادامه مطلب مومن بیا اینها را که گفتی بررسی کنی. ناباور علاقهای به بحث درباره آنها ندارم زیرا شما مسلمان ها معمولاً توجه ندارید که معنی معجزه چیست و با قرآن به عنوان معجزه برخورد نمی‌کنید و در آخر می گویید ما نمی‌دانیم حقیقت درباره قرآن چیست و نمی‌توانیم درباره کتاب خدا قضاوت کنیم و علما باید نظر بدهند و از این قبیل جواب ها خلاصه در نهایت بدون نتیجه راهتان را میکشید و میروید مومن البته که ما قرآن را معجزه پیامبر میدانیم. چطور می ما آن را معجزه نمیدانیم ناباور لطفا خوب توجه کن معجزه یک متعی پیامبری همان دلیلی است که قرار است ما را متقاعد کند و دیگر شک و شبهی برای ما باقی نگذارد که مدعی راست میگوید. مومن، همین طور است. ما هم جزین فکر نمی کنیم. نابابر. آیا وقتی کسی ما را مخاطب قرار می و برای ما شروع به آوردن دلیل و بیانه میکند، کند من و تو این حق را برای خود قائل هستیم که با عقل و شعور خود دلایل و شواهد او را بررسی کنیم یا نه؟ مومن با لحنی حاکی از اطمینان گفت البته که این حق را داریم نابابر آیا ما حق داریم هرگاه دلایل و شواهد او را متقاعد کننده نیافتیم آنها را غیر قابل قبول بدانیم یا خیر؟ مومن بله حق داریم نابابر ولی قالب مسلمانان با این دیدگاه به قرآن نگاه نمی کنند از یک طرف میگویند گویند که این کتاب معجزه پیامبر است. پس انتظار می برای خود این حق را قائل باشند که بتوانند بر اساس عقل و دانش خودشان این معجزه را محک بزنند تا ببینند متقاعد می یا نه. اما از طرف دیگر به محض اینکه مشکلی در آن و یا تناقضی در قرآن به آنها نشان داده می شود حتی اگر نتوانند با عقل و دانش خودشان پاسخی برای تناقض بیابند، ایمانشان را به صورت معلق در نمیآورند بلکه میگویند حتماً در قرآن تناقضی نیست و حتماً علما راه چاره برای آن دارند و حتماً عقل ما نمی رسد مؤمن مگر نباید صبر کرد تا دید علما چه میگویند این که رویگرد غیر ای نیست ناباور تا منظورت از صبر کردن چه باشد اگر منظورت این باشد که با صبر و حوصله سخنان علمای موافق و مخالف را مطالعه کنی تا حتی مقدور نکته ای مقفول نماند و طی این مدت به الهی بودن قرآن و نبوت محمد نه ایمان بلکه با شک و تردید نگاه کنی چنین رویکردی غیر عاقلانه نیست در واقع این رویکردی است که ما نسبت به همه امور غیر مقدس و غیر ایمانی داریم. اگر تا دیروز از بابت چیزی مطمئن بوده ایم، اما امروز دلیل قابل تعملی بر علیه آن مشاهده کنیم اطمینان ما تبدیل به تردید می شود. ولی اگر منظورت از صبر کردن این باشد که منتظر بمانیم همه علمای اسلام اعتراف کنند که اشکالی در قرآن وجود دارد و در طول مدت این انتظار ایمانمان را هم حفظ کنیم این رویکرد عاقلانه نیست و ظاهرا نگاه تقدیسی مسلمانان به قرآن باعث می شود در عمل چنین روشی را پیش بگیرند اگرچه چیز دیگری ادعا کنند به هر حال قرآن به عنوان معجزهی برای تکتک تک انسان هاست چرا که محمد برای متقاعد کردن هر انسان به تناسب به عقل و هوش او معجزه و دلیل جداغانهی نیاورده است. پس همین قرآن باید تک تک انسانها با هر میزان از عقل و هوش و دانش و با هر زبان را متقاعد کند. هر انسانی که سؤال کند از کجا بفهمم محمد پیامبر بوده؟ در پاسخش گفته خواهد شد این کتاب گواه پیامبری اوست. یعنی هر انسانی حق دارد خودش. با عقل و هوش خودش در مورد اعتبار این گواه قضاوت نماید اگر معنایش جز این بود در پاسخ بعضی از افراد گفته میشد برای متقاید شدن شما گواهی وجود ندارد اگر قرار از این قرآن دلیل ایمان من و تو باشد پس هم میتواند مرا متقاعد کند و هم میتواند تو را متقاعد کند اگر من ببینم که تو متقاعد شده ای، نباید قبول کنم که این گواه متقاعد کننده است شاید تو اشتباه کرده باشی اینکه علمای اسلام بگویند قرآن این متقاعد کننده است نمیتواند دلیل شود که من حق بررسی را از خودم ثلب کنم و به اینکه اشکالاتی بی جواب در آن پیدا کرده هم، بی بیاعتنا باشم و راهم را بکشم و بروم و به ایمانم به آسمانی بودن قرآن ادامه دهند. علیه مسلمانان حق بررسی و ارزیابی قرآن را از خود میگیرند و به جای اینکه اول بررسی کنند، و سپس به معجزه الهی بودن قرآن ایمان آورند و حق بررسی مجدد و مجدد را تا پایان عمر برای خود محفوظ نگه دارند. بدون حتی یک بار خاندن کامل آن و واکاوی و موش کافی به قصد یافتن موردی از خطا و تناقص در آن، از ابتدا معجزه بودن آن را به معنی مقدس و الهی بودن آن میپذیرند و هر اشکالی هم که در قرآن به آنها نشان داده شود از کنارش میگذرند. ممن، چه اشکالی دارد که پیش از خواندن کامل قرآن و تنها با شنیدن آیاتی از آن به الهی بودن آن ایمان آوریم؟ هر کسی به شکلی متقاعد می شود. شاید کسی فقط با شنیدن چند آیه و توجه به سبک منحصر به فرد قرآن آن را الهی بیابد ناباور سبک منحصر به فرد یک کتاب دلیلی بر غیر انسانی بودن منشه آن نیست. و شاهکارهای ادبی متعددی در جهان علی رغم تلاش برای تقلید از آنها همچنان منحصر به فرد ماندهاند. اصولا خدکش استاندارد شده و قابل اعتمادی برای اندازه‌گیری یک متن از لحاظ سبک و اسلوب جهت قضاوت در مورد الهی بودن یا نبودن آن وجود ندارد با این حال من به کسی که تنها به دلیل قلیان احساساتش پس از شنیدن چند جمله از یک متن متقاعد میشود، آن متن از جانب خداست خورده نمیگیرم. اما او نباید فراموش کند که هنوز همه ی آن را وارسی نکرده و لازم است همیشه این حق را برای خود حبس کند تا به محض برخورد با اشکالی از جنس اشکالات انسانی بتواند به الهی بودن آن تردید کند. مسلمانان این حق را از خود سلب می کنند. معجزه تا وقتی که نام معجزه دارد، حق بررسی آن تردید در آن و رد آن محفوظ است. در حالی که بین مسلمین قرآن مقدس است و هر چیز مقدس خارج از دسترس نقد و ارزیابی قرار میگیرد و این تناقضی در اعتقادات و رفتار مسلمین است مومن من متوجه نمی شوم طبیعی است که وقتی چیزی به عنوان معجزه الهی شناخته شود مقدس هم بشود وقتی بفهمیم که قرآن کلام خداست طبعا باید برای جملات آن حقانیت و حرمت قائل شویم ناباور بالاخره معجزه یا معجزه الهی کدامش؟ این دو با هم فرق دارند و دارای دو بار معنایی متفاوتن باید گفت ظاهرا در نفس دانستن یک متن با تناقض روبرو می‌شویم چه این متن قرآن باشد چه هر متن دیگری باشد اگر یک متن به عنوان معجزه به ما معرفی شود و معنی کلمه معجزه در اینجا این باشد که این متن گواه و مدرکی است از, از سوی یک مدعی که لازم است مخاطب آن را ارزیابی و موشکافی کند تا به صحت و سقم ادعای مدعی پی ببرند این حق همباره برای مخاطب معجز باقی می ماند که خودش صحت و سقم جملات و مفاهیم آن متن را تشخیص دهد حق راستی آزمایی ادعای مدعی از طریق بررسی گواه همراه با ارائه گواه به مخاطب داده می شود. او بدون داشتن این حق نمی تواند این گواه و مدرک را ارزیابی کند. در اینجا این متن حکم گواه و مدرکی را دارد که ارائه شده است و مخاطب حکم قاضی بررسی کننده گواه و مدرک ارائه شده را دارد اما اگر یک متن به عنوان معجزه به ما معرفی شود و معنی کلمه معجزه در اینجا این باشد که این منتر پیشتر الهی بودنش ثابت شده است طبعا مخاطب حق ارزیابی و موشکافی متن جهت کشف صحت و سقم جملات و مفاهیم آن را ندارد و باید هر آنچه در آن است بپذیرد در اینجا این متن حکم قانون و یا حقیقت محض را دارد و مخاطب حکم مجری قانون را دارد ظاهرا اگر یک متن هم به عنوان معجزه معرفی شود و هم به عنوان حقیقت و قانون مقدس معرفی شود مخاطبین در دام مقالطهٔ اشتراک لفظی میافتند در این حالت کلمه معجزه به دو معنی کاملا متفاوت به کار می‌رود یکی به معنی گواه و آزمون و دیگری به معنی امر مقدس اگر قرآن برای من یک کتاب مقدس است و آن را دور از دسترس عقل و قضاوت خیش قرار می‌دهم پس باید ببینم چگونه نبوت محمد به من ثابت شده است که پس از آن او را و کتابش را الهی و مقدس دانستنم. آخر من که هرگز قرآن را به عنوان گواه بر رسید و زیر و رو نکرده بودم. من که هیچگاه قرآن را جمله به جمله به قصد یافتن خطای انسانی در آن مورد کندوکاو قرار نداده بودم. اگر خدایی در کار باشد و آن خدا برای متقاعد ساختن من گواه و مدرکی بفرستد به این معنی است که به من حق میدهد شروع به بررسی آن کنم و به من حق میدهد که متقاعد بشوم یا نشوم و به من حق میدهد که اگر امروز به شرایط و اطلاعات امروزم متقاعد شدم و فردا به شرایط و اطلاعات فردایم دوباره شک کردم بتوانم پی شک خود را بگیرم و مرا به خاطر این شکهایم عذاب نکنم اما مسلمانان در دل خود از همان خدا میترسند و جرأت شک کردن در قرآن را به خود نمی دهند. معجزه گواه صدق یا کذب مدعی پیامبری است. حق بررسی این گواه همواره وجود دارد در حالی که امر مقدس قابل بررسی و ارزیابی محسوب نمی شود. هر که به گواه به عنوان امر مقدس نگاه کند شعن گواه بودن آن را ندیده گرفته است. امر مقدس شعن گواه ندارد و گواه شعن امر مقدس ندارد. گواه چیزی است که از لحاظ روانی اجازه اش را به خود می دهی. اما امر مقدس چیزی است که از لحاظ روانی اجازه اش را به خود نمی دهی. از کودکی، قرآن به عنوان امر مقدس در ذهنمان جای میگیرد و لذا توانایی معجز دیدنش را از دست می‌دهیم و به آن همچون معجزه‌ای که باید صدق و کذبش بررسی شود نگاه نمی‌کنیم درست در جایی که خطا یا تناقض و یا هر خصوصیت حاکی از انسان ساخته بودن در قرآن ببینیم به جای آنکه طبق روال منطقی بر روی آن متمرکز شویم و آن را همان نقطه ضعفی بدانیم که قرار بود به دنبالش باشیم به راحتی از کنارش می‌گذریم و سعی در توجیه آن داریم و اگر هم توجیهی نیابیم بدون اینکه در دین و ایمانمان من خلالی وارد شود تا آخر عمر ندیده می انگاریمش به همین دلایل باید گفت که یک متن که قرار از مقدس باشد. نمیتواند به عنوان معجزه و گواه و آزمون راستی آزمایی نبوت انتخاب شود. جان در بردن تناقضات و خطاهای انسانی متعدد قرآن از تیغ نقد و موشکافی در طی چهارده قرن گذشته بیش از هر چیز ریشه در همین نگاه دوگانه و متضاد دارد و این نگاه دوگانه نیز ریشه در انتخاب یک متن به عنوان گواه راستی آزمایی نبوت دارد متنی که در عین حال باید به دلیل تقدسش هیچ چون و چرایی در آن نکرد در هر دینی که یک متن هم به عنوان متن مقدس و هم به عنوان معجزه و گواه معرفی شده باشد همین مشکل وجود دارد پاورقی در دین بهایی نیز همین نگاه دوگانه به کتاب عقدس وجود دارد ادامه ای مطلب اکنون و در حال حاضر تو نه تنها دلایل عقلی برای اثبات خدای اسلام و معاد اسلام نداری بلکه دلایل عقلی و فلسفیت هم خدای اسلام و هم روز جزا را رد میکنند توجه داشته باش که نتایج برهان علیت نسبت به وجود خدای دین تو و روز جزا که از ارکان اعتقاد دینی توست سکوت پیشه نمی کنند تا تو اگر بخواهی ایمانت را حفظ کنی و اگر نخواهی دست از ایمانت بکشی برهان علیت مستقیما دین تو و جهانبینی تو را مخالف عقل و منطق می داند و اجازه نمی که نسبت به وجود خدای دینت و برپایی آخرت حتی موضع لاعدری و نمیدانم اتخاذ کنید. اگر تا پیش از برهان علیت میتوانستی بگویی نمی شود با اطمینان و با دلایل عقلی از نبودن خدا و معاد صحبت کرد و مجازیم در این باب سلیغی عمل کنیم بعد از برهان علیت باید بگویی میدانم نه خدای متشخص عدیان وجود دارد و نه روز حساب. دیگر راه بر باور سلیقه‌ای بسته است یگان معجزه‌ای را هم که اعتقاد داری برای ادعای پیامبرت وجود دارد اصلا به چشم معجزه نگاه نمی کنی و به لحاظ روان‌شناختی آمادگی بررسی و ارزیابی منصفانه آن را نداری لذا اگر هم آن را ارزیابی کنی و با اشکالی در آن برخورد کنی ناخودآگاه اولین و سطحی ترین پاسخی که به ذهنت خطور کند را به عنوان توجیه میپذیری و اگر هم جلوتر بروی نمیتوانی به نتایج عرضیابیت پای بند باشی اکنون وقت آن است که قبول کنی حق تدریس این دین را به بچه ها نداری و باید دست از این کار بکشی تا کاری شرافتمندانه کرده باشی من نمیگویم دست از ایمانت بکش من میگویم دست از تبلیغ و تدریس ایمانت به کودکان بکش حتی به فرزند خودت تو با تدریس و تبلیغ درس دینی به فرزندان خودت و دیگران آنها را به ورطه قبول ناموجه عقاید غلط و بعضا موزر و غیر اقلانی و گاهی غیر اخلاقی دین میکشانی و باعث میشوی که در این سن حساس باورها و احکام دینی را مقدس بدانند و بدون توان ارزیابی آنها همگی را چشم بسته بپذیرند و سپس متعصبانه پیروی کنند این کودکان معمولا در سالهای بزرگسالی همچنان به حفظ باورها و پیروی احکام مقدس شده دینشان ادامه میدهند و از آنجایی که معمولا دلیل اقلانی و موجهی برای باورهایشان ندارند ممکن است از انتقادهایی که به ایشان می شود سرخورده و گاهی عصبانی شوند و ای بسا بعضی از آنها به جان مخالفانشان بیفتند و آنها را قل و غم کنند تا دیگر صدای انتقاد و مخالفتی نشنوند و بعضی دیگر پیوسته التماس کنند که لطفاً به اعتقادات ما احترام بگذارید زیرا نه دلیل موجهی برای درستی باورهایشان دارند و نه توان روانی دلکندن از آنها را در آن زمان آنها نمیدانند و یا دیگر نمیخواهند بدانند که امسال تو بودهاند که این بلا را و بلاهایی خیلی بیشتر از این را با نیتی خیرخواهانه بر سرشان آوردند مومن، تو چگونه با این اطمینان میگویی که باید دست از تدریس یا به قول تو تبلیغ بکشم؟ آیا فکر میکنی با عقل ناقص من و, و این چند جلسه بحث میتوان به این نتیجه رسید که دین اسلام یک دین الهی نیست و یا معادی در کار نیست؟ آیا چون تو فکر میکنی تناقضی در قرآن هست و فرزن من نمیتوانم جوابی برای این ادعای تو بیابم؟ به این معنی است که واقعا تناقضی در قرآن است و این کتاب نمی تواند از جانب خدا باشد؟ ناباور من هر دلیلی برای تو بیاورم و تو نتوانی آن دلیل را رد کنی نهایتا به نقاط ضعف درک و معرفت من و نوع بشر اشاره خواهی کرد و لیستی بلند بالا از راه های غیر مطمئن کشف حقیقت برای من تدارک خواهی دید مومن مگر دروغ میگویم مگر جز این است که راه های کشف حقیقت بسیار نامطمئن هستند و نمیتوانیم از باب واقعیت داشتن هیچ کدام از تصوراتمان مطمئن باشیم مگر جز این است که نمیتوان از بابت نتایج چند هفته بحث فلسفی مطمئن بود ناباور تو راست میگویی اما یادت باشد آنکه ایمان دارد تو هستی نه من تو اگر به نامطمئن بودن راههای معرفت و شناخت بشری اعتقاد داری چگونه درباره راستی ادعای پیامبر دینت مطمئنی چگونه در این باب به ایمان رسیدی ای؟ تک تک دلایل مرا غیر مطمئن می‌دانی اما تک تک دلایل خودت را هم از همین زاویه نگاه کرده ای؟ فکر می کردی که برهان اقلانی مطمئنی برای اثبات وجود خدای اسلام و نبوت و معاد داری. وقتی با همان اقل خودت دیدی که نتیجه برهانت برعکس شد و دلایل اقلانی نه تنها خدا و معاد دینت را اثبات نمی کنند بلکه رد می کنند یادت آمد که استفاده از اقلت راه درستی برای معرفت نیست؟ فکر میکردی قرآن معجزه است برای اثبات الهی بودن دین اسلام. اما وقتی دیدیم میتوان با بررسی اقلانی نتیجه دیگر درباره قرآن گرفت، یادت آمد که ما نمی توانیم با اطمینان درباره الهی نبودن قرآن رأی صادر کنیم؟ چطور پیش از این می توانستی با اطمینان درباره معجزه الهی بودن قرآن رأی صادر کنی و به ایمانی خلل ناپذیر دست یابی وقتی رأی به معجزه الهی بودن قرآن میدادی، عقل و دانش تو ناقص و ناکافی نبود حالا ناقص و ناکافی شد؟ یادت باشد که ایمان تو قرار است بر همان لیست بلند بالای ناتوانی های بشر برای نیل به حقیقت استوار شود. پس اصلا هرگز نباید ایمانی به وجود آید شرافتمندانه نیست چیزی را که نمیتوان توان به آن ایمان داشت این چنین با اطمینان در سر کودکان خودت و دیگران فرو کنید معمن به ساعتش نگاه کرد و گفت: «من امروز کاری دارم و باید زودتر بروم اگر موافق باشی هفته دیگر همدیگر را ببینی. هفته بعد و هفته بعد از آن معمن گفت که نمیتواند بر سر قرار حاضر شود پس از آن هیچگاه یکدیگر را ندیدند. عنوان دو ماه بعد قضاوت سخت است. ناباور در حال مطالعه بود که فرزندش آمد و گفت: پدر، معلم دینی ما آقای مؤمن می گفت به عقیده مسلمانان خدا برای مجازات افراد کناهکار جهنمی ساخته که در آن یک آشامیدنی داغ به نام همیم به آنها خورانده می شود. ناباور با تعجب به پسرش نگاه کرد و پرسید آقای مؤمن دقیقا چه گفت؟ پسرش جواب داد در جهنم آشامیدنی ناباور به میان حرف پسرش پرید و گفت نه نه منظورم این قسمت نبود منظورم اولش بود گفتیم معلمتان می گفت به عقیده مسلمانان؟ پسرش گفت بله او میگفت به عقیده مسلمانان خدا برای تنبیه دوباره ناباور به میان حرف پسرش دوید و گفت صبر کن لطفا دقیقا به سؤالم جواب بده آیا او گفت خدا برای تنبیه افراد گناهکار جهنمی ساخته که چه و چه؟ یا گفت به عقیده مسلمانان خدا برای تنبیه افراد گناهکار جهنمی ساخته که چه و چه پسرش کمی فکر کرد و گفت آقای مؤمن گفت به عقیده مسلمانان یعنی او همیشه میگوید به عقیده مسلمانان این طور و به عقیده مسلمانان آن ناباور چند لحظه به نقطه ای از گوشه اتاق خیره شد و سپس رو به پسرش کرد و پرسید آیا او همیشه می گفت به عقیده مسلمانان یا اخیراً اینطور طور می گوید؟ پسرش کمی مکس کرد و سپس شانه را بالا انداخت به این معنی که یادش نیست. ناباور سرش را پایین انداخت و با صدای آهسته با خودش گفت خب، اگر خوشبین باشیم، این هم خودش قدمی است. رفیق ما انقدرها هم شرافتش را از دست نداده. شاید اگر من هم جای او بودم جزی نمی کردم. سپس به چشمان پسرش نگاه کرد و گفت قضاوت کار است. پسرش با تعجب پرسید چه می گویی پدر؟ ناباور گفت هیچی سپس ادامه داد خوب بگو ببینم چه میخواستی بگویی گرامیان همینجا در صفحه 162 کتاب به پایان میرسه در اینجا نویسنده دیگر آثار خودش رو معرفی کرده شامل کتاب فیزیولوژی ایمان که قبلا اونو براتون صوتی کردم و کتاب سفر به دل ادیان که داستانی بسیار جذاب برای کودکان نوجوانان و همینطور بزرگ سالانه و مصمم هستم که حتما براتون صوتیش کنم. هم سرگرم کننده است و هم بسیار آموزنده. هم معلومات بسیار خوبی به خاننده میده و هم یک کلاس تفکر فلسفی برای بچه ها و بزرگ و خاننده رو با ادیان مختلف به جز اسلام البته آشنا میکنه کتاب دیگه نویسنده هم اسمش مغلطه های پس تا درودی دیگر در کتاب بعدی بدرود،